ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون دیگویند ابو بکر با علی فرق داشتید عمر با علی فرق داشتید ما طرفدار علی هستیم قربان علی درم چی میگوید؟ همچین چیز اگر شما طرفتار علی هستید شما اگر واقعا پروان اهل هستید قربان درم علی یکی از بطرانش اسمش ابو بکر در میدان کربلا شهید شده چند روز شما او را معرفی کردید کدول یک از شماک علی عصید بسرانتون را بنام عبو باکر نام گذاری کردید علی بسرش عبو باکر در کنار برادرش حسین در کربلا شهید شده عمر برادر حسین بسر علی در کربلا شهید شده چرا مرسی نمیخانید؟ چرا مرسی نمیخانید؟ مگر در کربلا فقط علی عصر، علی اکبر؟ وقت دکتی نیست؟ قل عثمان ابن علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین به طاقت حضرت ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی اگر دروغ بگویم زبانم را قطع کنی، گردنم را قطع کنی بیارید مرشته های خودتون را، تاریخهای های خودتون را نیست پتری به نام ابو بکر؟ بلقیولا شهید نشده؟ علی با ابو بکر حرفی ندارد اگر علی با ابو بکر فرغی داشت پترش به اسم ابو بکر نامگذاری نمی با عمر اگر پرید داشت پسرش به نام عمر نامگذاری نمی شد و در کربلا شهید نمی شد علی با عمر اگر پری می داشت ام کلسوم را به عمر نمی چی می گویید؟ چی می با این بهانه می خواهید مردم را کرید بدید؟ که ما صحابه واقعی را قبول داریم اما مرتدین را قبول نداریم چی تو مرتد را قبول کن؟ که بشن آباد تعریف شهابی را تبریز میکنم که نیازی اراده نیست. معنی شهابی را برای میکنی. تو برده خودت را کلیه اهل تننت مطالعه کن. در کلیم کدام همکنی چیزی نمیشه که فردی از زمانی مدت ایمان بوده در حالت ارتداز مورده اون هم شهابیه. کی بودن تعریف شهابی اینه در حالت ایمان جرام رسول الله صلی الله علیه وسلم رضیا رب در و در حالت ایمان از جهان منتقل شده رحلت کرده اون هست صحابی او را میگوین صحابی و این صحابی مقامی دارد و این صحابی ای دارد عجری دارد که در قرآن معیار و ترازوی تشخیص ایمان مردم بعدی معرفی شدن قرآن با همم در روایت رود. قرآن میگوید فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد صدقوا اگر مردم دنیا ایمانی آوردن مانند اون ایمانی که شما شما ای صحابه رسول شما دارید آمنتم به خطاب شما ایمانداری الا ایمانی آوردند فقد صدقوا ان وقت ایمانشون قبول است ایمان من های صحابه ایمان تقلبی پیش پرده ها قبول نیست و انتولو و انوا هم اگر از شما رو بهدانم بگویم ما ایمان داری و شما را قبول ناریم اویه و انوا هم پیشقا اونا در اختلاف خیلی پس از